داستان ثوم اسم شب امروز در قصر کنان پاشا همه ناراحتند کن آن پاشا شده عین زنگ نزدیکش نمی شود رفت اما پاشا حق دارد نوش فرهاد خدمت نظام را تمام کرده و آمده فرهاد در دوران خدمتش نتوانسته بود به درجه صدفان دومی برسد با درجه ی صدفان سومی سو به واحدش رفت و با درجه ی صدفان سومی سو هم ترخیص شد و به خانه برگشت. در آن دوره از بیش از دو هزار نفری که با درجه ی صدفان سومی سو به خدمت نظام رفتند فقط فرهاد بود که به درجه ی صدفان دو نرسید. این بی ارزگی هیچ جوری توی کت کنان پاشان نمی رفت. ده روز قبل از برگشتن نوش به خانه نامی از ژنرال فرمانده فرهاد به دستش رسیده بود. این ژنرال قبلا در واحد کن آن پاشا سرگروهبان بود. کن آن پاشا در حقش خوبی های زیادی کرده بود و او هم احترام پاشا را خیلی نگه می داشت. نامه را هم برای همین فرستاده بود. جنرال در نامش از پاشای سابقش عذرخواهی کرده و نوشته بود. با همه تلاشش نتوانست فرهاد را به درجه صدفان دومی برساند پاشا همین که نامه به دستش رسید عین برق گرفته ها شد توی عمرش به هیچ کس التماس نکرده بود از هیچ کس هم نخواسته بود التماس بکند برای نوش هم به هیچ وجه نمیخواست التماس کند اما چطور شده بود که این فرهاد نتوانسته بود در ارتش موفق شود. پدر و پدر بزرگ آن پاشا هم پاشا بودند، پدر زنش و پدر پدر زنش هم پاشا بودند، تازه پدرش دو بار پاشا شده بود و ثابت کرده بود لایق این رتبه است. او در زمان سلطان عبدالحمید تا مقام سرداری رسیده بود، اما بعد سلطان از دستش عصبانی شده و خلع درجهش کرده بود. و او دوباره از درجه سرگردی پشت سر هم ترفی گرفته بود تا سرانجام دوباره به درجه سرداری سپاه رسیده بود. دیوارهای قصر پر از تابلوهای رنگ روغن پاشاها بود. سرت را هر طرف که میچرخاندی یک تابلوی پاشا میدیدی. جاهای خالی دیوارها را هم یادگاری های قدیمی زده بودند. شمشیرها و ها و نشانها و فرمانها و ها و غیره چطور شده بود فرهاد که توی همچو خانه‌ای بزرگ شده بود نتوانسته بود در دوران خدمت از صدفان سومی بالاتر برود فرهاد پنجمین نوه کنان پاشا بود پاشا فرهاد را بیشتر از بقیه نوههایش دوست داشت برای همین ناکامی فرهاد در حرفه خانوادگیشان پاشا را خیلی ناراحت می کرد. آن پاشا سالهای سال بود، بازنشسته شده بود. اما نمی توانست توی قصر بیکار بنشیند. همه درختهای گردوی باغچه را به صف کرده بود. مرغ و خروس و بوغلمون را باز نگه می داشت. هر روز صبح از حیوانهای توی مرغدانی سان می دید. همه مبل و سنددی و میزهای قصر به صف شده بودند. اگر دماغ یکی از کفش های توی کفشدانی کمی جلوتر می رفت و صف را به هم می زد اعصاب پاشا به هم می ریخت. زندگی در قصر با و انزباد همراه بود. همه بایست می چه چیزی در کدام کشو یا در کدام قفس است؟ سر نهار یا شام پاشا یک دفعه از یکی از اعضای خانواده می پرسید خودنویستان کجاست؟ کسی که این سؤال از او شده بود بایست جواب میداد توی جیب بغل راست کتم توی جیب بغل چپ کتتان چی هست کیف پولم کنعان پاشا روزی چند بار یادآوری میکرد که هر کسی توی هر یک از جیب چه چیزی باید بگذارد حتی گربه های قصر هم یاد گرفته بودند که کی و کجا میتوانند بگردند و چه وقت هایی میو کردند برایشان قدغن است خلاصه کنان پاشا به همه نشان داده بود که نظم و انزباط در خانه یعنی چه. همه بایست رأس ساعت ده شب توی رخت خواب می رفتند و حتما می خوابیدند. دیدن خواب زیادی قدغن بود. برای همین بایست شام را سبک می خوردند. موقع خواب هیچ جایشان از زیر لحاف بیرون نمی ماند و با فکرهای بی خودی مغزشان را خسته نمی کردند. ساعت بیدار باش شش صبح بود. با دستور روزانه اعلام می کرد که آن روز در قصر چه غذاهایی پخته می شود. کن آن پاشا برای منظم کردن افراد خانوادهش، درخت توی باخچهش، حیوان توی مرگدانیش و گربه های توی خانهش آنقدر سعی کرد و زحمت کشید که در نهمین ماه هشتاد و ششمین سال زندگیش از پا افتاد. طرف راست بدنش، دست راست و پای راستش، لمس شده بود به سختی حرف میزد زبانش می گرفت. اما این وضعیت باعث نشده بود وظایفش را در قر انجام ندهد. با یک دستش عصا را می گرفت و با دست دیگرش به دیوارها و نرده های راه پله تکیه میداد و لنگلنگگان میرفت. اگر ساعت شش صبح هنوز کسی خواب مانده بود با عصاببه در اتاقش میزد و بیدارش میکرد. تتپت کنان دستور میداد. ساكنان قصر را از ترس می‌لرزند و به انجام دادن وظایفشان فرا میخواند. درست در چنین وضعیتی بود که خبر رسید نوه محبوبش بیان که به درجه صدفان دومی برسد از خدمت نظام ترخیص شده. از فرط ناراحتی دو روز از اتاق خوابش بیرون نیامد. در عرض این دو روز همه نظم قصر به هم ریخت. بعضی‌ها تا نصف شب بیدار می‌ماندند، بعضی‌ها تا ظهر می‌خوابیدند. حتی تابلوهای روی دیوارها هم کچ شد تابلوهای های کچ شده اعصاب کنان پاشا را پاک به هم میریخت صفح صندلی ها و میزها هم به هم خورده بود سگ گرگی توی باغچه هم بی وقت وق میزد خروس ها هم صبح نشده میخواند شده بودند خروس بی محل. اما این بین فقط دو روز طول کشید همین که کن آن بلند شد و گشتی توی قصر زد همه چیز. روال سابق برگشت فرهاد از خدمت نظام برگشته و به قصر آمده بود پاشا چون فرهاد را بیشتر از بقیه دوست داشت از ترفی نگرفتنش خیلی ناراحت شده بود برای همین فریاد زد جلو چشمم آفتابی نشود ساکنان قصر نگران بودن نکند بلایی سر آن پاشا بیاید خیلی التماسش کردن که فرهاد را ببخشد اما سرباز قدیمی در کمال خشونت نخواست نوی محبوبش را ببیند. فرهاد جوانی بود زاق و بور، ظریف و دوست داشتنی. مدام میگفت پدر بزرگ باید به حرفم گوش بده. بذار توضیح بدم، اگه مقصر بودم اون وقت هرچی خواست بگه. جلسه خانوادگی در سالن بزرگ قصر تشکیل شد. قرار بود به حرفهای فرهاد گوش بدهند و اگر واقعاً در صدفان دوم نشدنش بی تقصیر بوده، بروند و برای کنان پاشا را تعریف کنند. آنهایی که توی سالان جمع شده بودند، از زن و مرد چهارده نفر بودند. دور میز کندکالی شده بزرگ نشسته بودند. پاشاها از داخل قابهای چوبی حکاکی شده نگاهشان می کردند. فرهاد پسرم تعریف کن. خوشمون به توست. عموی کوچک هشتاد ساله اش بود که این را گفت. فرهاد شروع کرد به تعریف کردن. کسی حقمو نخورده. کسی در حقم بی ادالتی نکرده. حق داشتن به من ترفیه درجه ندن. اما من هیچ تخصیلی ندارم. همش به خاطر اون چرا قلی شد. صدای جوان از حیجان میلرزید کم مانده بود گریهش بگیره. امویش پرسید چراغلی؟ چراغلی دیگه کیه؟ چراغلی سرباز بود توی گروهان من هرچی شد به خاطر اون شد وگرنه همه مافق ها منو دوست داشتن هیچ روزی تو انجام وظیفه کتایی نکردم به همه سربازهای سرباز گروهان خوندن و نوشتن یاد دادم توی میدون تیر هم همشون نمره خوبی گرفتن شب و روز کار کردم امویش گفت این نکته ها رو جنرال هم توی نامش نوشته اما ننوشته که چرا نتونسته بهت ترفی بده. لابد گناه بزرگی مرتکب شده ای. اونو تعریف کن. یک ماه مونده به ترخیص شدن هم رفتیم مانور. جنرال چون پدرمو می شناخت گروهان منو توی قرارگاه لشکر نگه داشت. توی مانور ما از نیروهای قرمز بودیم. گروهان من در خدمت قرارگاه لشکر بود. شبها داروبر قرارگاه نگهبانی میدادیم. هر شب به نگهبانها اسم شب و نشونه میدادم. این اسم شبها و نشونه هر شب عوض می شد نگهبانها شب اگه اون اطراف کسی رو میدیدن اول فریاد میزدند ایست بعد میپرسیدن اسم شب اگه آدمی که از توی تاریکی می اومد اسم شب و می اون وقت ازش می نشونه اگه نشونه رو هم میدونست میفهمیدن از نیروهای قرمزه و راهش بیاد تو گفتم که یه سربازی بود اسمش چراغلی. امربر من بود. یه شب قبل از اون که سربازا رو سر پست بفرستم بهشون گفتم بچهها امشب اسم شب بارونه. نشونه هم زنه. فهمیدین؟ گفتن فهمیدیم فرمانده. تکرار کنید. اسم شب؟ همه با هم فریاد زدن بارون. نشونه؟ فریاد زدن زن. مباد رو فراموش کنید. اگه کسی اسم شبو ندونست و نشونه رو نگفت بدونین از نیروهای آبیه خیلی مواظب باشین حتی اگه من هم بودم و نتونستم اسم شبو نشونه رو بگم توی قرارگاه را هم ندین فهمیدین؟ فهمیدین فرمانده از قصد کلمه های مثل بارون و زنو که به گوش همشون آشنا بود انتخاب کرده بودم تا یادشون نره شب شد نگهبان ها سر پست رفتن نزدیک های نصف شب بود که به گفتم؟ برو قرارگاه ببین خبری هست یا نه؟ چرا قلی رفت؟ منم روی تخت سفریم دراز کشیدم. نگو خوابم برده بوده. صبح که بیدار شدم دیدم اون دروورا جز گروهان من هیچ کس دیگه ای نیست. فقط چادر من مونده بود و نگهبانهای من. چرا قلی جلو یکی از نگهبانهای ایستاده بود و به نگهبان میگفت بزار رد شم هم قطار. دستور فوری اومده. نگهبان هم به اون میگفت اگه اسم شب و نشونه رو نگی پسر بابا من باشی نمیذارم ردشی. خب از سر شب تا حالا دارم میگم که اسم شب رحمت نیست به خدا رحمت داداش نشونه ضعیفه نیست نگو از قرارگاه دستور کتبی فرستاده بودن. قرار بوده ساعت سه بعد از نصف شب چادرها رو جمع کنیم و دشمن و یعنی نیروهای آبی رو تعقیب کنیم. چرا دستور رو گرفته بود و اومده بود اما چون نگهبان اجازه نداده بود نتونسته بود بیاد داخل. تا صبح با نگهبان سر و کله میزد. اسم شب. رحمت. نیست. نشونه. ضعیفه، نیست. تا صبح همه ای ها رفته بودن و فقط نگهبان های ما مونده بودن. خیلی عصبانی شدم، دویدم رفتم، سر چراغلی داد زدم و گفتم مگه من به شما نگفته بودم اسم شب بارونه، نشونم زنه؟ چراغلی گفت، والا منم دارم همینو میگم فرمانده، اما بازم رام نمیده چی چی داری میگی؟ اسم شب رحمت نشونه ضعیفه. رحمت نه بارون خب چه فرقی میکنه فرمانده بارونم رحمته؟ فاری گروهان رو جمع کردم. شیس ساعت تموم توی دشت و و بیابون گشتیم. آخر سر و هر جون کندنی بود قرارگاه پیدا کردیم. گزارش وضعیت رو به ژنرال دادم. لبخند زد و گفت دیگه تکرار نشه. اون شب باز هم گروهان رو جمع کردم. بچه ها. امشب اسم شب کفشه. نشونه هم شلواره. مبادا فراموش کنین. کسی رو که اسم شب و نشونه رو نمیدونه تو راه نمیدین. خودم هم اگه بودم راه ندین تکرار کنین اسم شب کفش نشونه شلوار سه بار پرسیدم و همهشون تکرار کردن بازم برای اینکه فراموش نکنن کلمه های انتخاب کرده بودم که همهشون میدونستن نگهبان رفتن سر پوست هاشون من هم چراغلی و فرستادم قرارگاه تا اگه دستوری هست بگیره و بیاره صبح شد از خواب که بیدار شدم دیدم باز بازم فقط چادر ما مونده و نگهبان من نگهبان سر چراغلی داد میزد اسم شب چراغلی هم می گفت چاراق نیست به خدا چاراق داداش نیست نشونه تنبون نگو کل شب اینطوری بگو مگو می کردم دویدم سر چراغلی داد زدم مگه من بهتون نگفتم اسم شب کفشه خب چه فرقی داره فرمانده کف کفشه دیگه مگه نگفتم نشونه شلواره گفتی؟ خب منم گفتم گروه <تصفيق> گروهانو جمع کردم و را افتادیم نزدیک های قروب به هر زحمتی بود واحدمونو پیدا کردیم وضعیتو برای ژنرال توضیح دادم این دفعه نخندید اون شب بهشون گفتم اسم شب رخت خوابه نشونه هم پیپ بازم به خیال خودم کلم های ساده انتخاب کرده بودم به هر کدومشون گفتم اسم شب و نشونه رو ده بار تکرار کنن چراغلیو هم فرستادم قرارگاه اما این دفعه نخوابیدم. کنار سربازی که سر راه برگشتن چراغلی نگهبانی میداد پهلوی یه بوته منتظر موندم چند دقیقه بعد دیدم یه سایه داره به طرف نگهبان میره نگهبان فریاد زد اسم شب از توی تاریکی اومد دوشک نیست نشونه چپاق، نیست، صدای چراغلی بود اسم شب، دوشک، نشونه، چپاق، هیچ کدوم نیست از جان پریدم، سر چراغلی داد زدم، سود باش باره تو فاری چراغلی رو از عمر بری ورش داشتم کارها هم راه شد توی گروهان همه به جز چراغلی اسم شب و نشونه رو یاد می گرفتن. آخرین شب مانور بود اون شب اسم شب توتی بود و نشونه کله. نگهبان نگهبانها رفتن سر پستشون چرا غلی هم که از امربری ورش داشته بودم درست جلوی قرارگاه نگهبانی میداد امربرم اومد توی چادرم و گفت ژنرال با شما کار داره فوری از چادر اومدم بیرون ساعت حدود یازده بود نگهبانی که سر راه بود فریاد زد اسم شب صدا شناختم شراغلی بود من یه خاصیتی دارم اگه یه هایی چیزی ازم بپرسن نمیتونم جواب بدم مثلا اگه بپرسن اسم چیه اسمم از یادم میره همین که چراغلی از دو قدم اون طرفترم از توی تاریکی داد زد اسم شب و فراموش کردم یعنی میدونستم اسم شب توتیه اما کلمه توتی یادم نمیومد. اومد همینطور داد میزد اسم شب گفتم چرا قلی من فرمانده گروهانم؟ میدونم فرماندهمون هستی تا وقتی اسم شبانگی نمیذارم ردشی، دستور خودته این حرف رو که زد کلمه توتی کلن از یادم رفت چرا قلی، مگه من جناب سهروان تو نیستم؟ جناب سروانم هستی، قربان. از جات جمع نخو، تا اسم شبانگی نمیذارم بری؟ شب قبلش یکی از نگهبانا رو چون گذاشته بود بدون گفتن اسم شب رد بشم تنبیه کرده بودم چرا قلیم فکر میکرد دارم امتحانش میکنم پسرم چرا قلی رد ردشم ژنرال احزارم کرده نمیتونم جناب سروان اگه فرمانده ستاد هم احزار کرده بود نمیذاشتم ردشی اسم شبو بگو و برو چادر و جنرال هم کمی اون طرف در بود یعنی بین چادر من و چادر ژنرال پنجاه قدم هم فاصله نبود ژنرال که دیده بود خبری از من نشده از چادرش اومده بود بیرون و داد میزد زد صدفا سو فراد. من هم داد زدم دارم میام جناب جنرال چراغلی گفت تا اسم شبانگی نمیتونی جایی بری عزیزم چراقلی من میدونم جناب سر فرمانده ایمایی اما باید اسم شبو بگی تا بذارم ردشی نک زبونمه چرا قلی اما یادم نمیاد جنرال دوباره از چادرش در اومد و داد زد صدفان ثبان فرهاد منم داد زدم از سایه میام جناب جنرال چرا گفت از جا تکون نخور. هم اونجا که هستی وایستا عزیزم چرا قلی؟ بفرما سرما؟ سروان به خدا نک زبونمه بگو فرمانده اگه نک زبونه تو خب بگو دیگه اسم شب ای خدا یه پرنده بود اما به خدا میدونم یادم نمیاد خب ما داشتیم جرابه هست میکردیم که یک دفعه جنرال از جلوی چادرش عصبانی داد زد کجایی فرهاد؟ اینجام جناب ژنرال دارم میام چرا غلی گفت؟ اسم شب چرا غلی من اسم این پرنده رو میدونم با ت شروع میشه انگار تو حرف ت داره اسم شب پرنده نیست یه پرنده سخنگوه مثل آدم حرف میزنه اسم شب ت داره ت یه پرنده ت دار سخنگو قد کلاق مگه نه نیست صدای رو شنیدی فرهاد. بله جناب ژنرال کجایی اینجام جناب ژنرال دارم میام سر نگهبان داد زدم چراغدی بفرما فرمانده ژنرال صدا میکنه خب صدا کنه فرمانده اسم شب چراغدی یه پرنده است توی قفس نگهش میدارن قد کلاغ ت داره یه پرنده با ت دیدی میدونم اگه میدونی خب بگو فرمانده جنرال فریاد زد فرهاد دارم میام جناب ژنرال از کجا میای؟ از اینجا میام زود بیا اطاعت برگشتم به طرف نگهبان چرا غلی بفرما جناب سروا اسم اون پرنده رو تو بگو و یادم بنداز من فراموش کردم والا منم فراموش کردم جناب سربان اگه میدونستم میگفتم واسه من چه فرقی میکنه خب اگه نمیدونی واسه چی وقتی میگم پرنده نمیذاری رد بشم پرنده نیست یعنی پرنده است. اما چه پرنده ای اگه اسمشو درست بگی منم یادم میفته جناب سربان یه پرنده یه سخنگو مثل آدم حرف میزنه یه پرنده قد کلاق ته داره کلاق تلاق نیز تلات، ملات طلا نوک زبونمه یه سرباز از چادر ژنرال اومد بیرون چراغلی به طرفش داد زد اسم شب سرباز گفت توتی منم یک دفعه گفتم آها توتی و راه افتادم چراغلی این دفعه گفت نشونه سرباز گفت کله منم داد زدم کله سرباز اومد این طرف من هم رفتم اون طرف سرباز روبروی من که رسید سلام نظامی داد و گفت جناب سروان ژنرال با شما کاری نداره میگه دیگه نیاد داشت آفتاب میزد منو و چراغلی دو ساعت فکر کرده بودیم اسم شب چیه سرواز ای با پاس بخش اومد پسته نگهبانی ها از چراغلی تحویل گرفتن منم رفتم توی چادر خودم اون روز مانوف تموم شد. یه هفته بعد هم ترخیص شدیم. میبینیم که من هیچ گناه دیگه ای نداشتم. امویش از فرهاد پرسید؟ خب، اسم شب چی بود؟ اسم شب؟ بله، اسم شب چی بود؟ ای خدا، الان یادم بودا، همین چند دقیقه پیش گفتم که امو جان. چند دقیقه پیش؟ چی گفتی؟ به خدا میدونم یه پرنده است توش حرف ت داره. تیاره؟ نه بابا همون پرنده که حرف میزنه طلاق؟ نه, نه ملات، ای خدا. امویش گفت: خب حالا هر چی. ما میریم اینهایی که گفتی برای پاشا تعریف میکنیم. جلسه خانوادگی تمام شد و اعضا رفتند. تا قضیه را برای کنان پاشا تعریف کن.